دعوت میکنم شنابندی یه رادیو فیلم امروز باشید با عنوان قرمز رادیو فیلم قرمز بازیگران هدیه تهرانی در نقش هستی مشرقی من هستی مشرقی متولد 1348 محمد رضا فروتن در نقش ناصر مله من دوست دارم لباسش کفششو و ظرف و ظروفش رو خودم بخرم کمن در امیر سلیمانی در نقش مونی اگه هم بکنی دیگه از یخت نمی‌خوری سید پیردوز در نقش عمو حسی به اونم میگفت این بار دوباره جلوی بالسمون میرفت دنبال خج و حیا آهنگ ساز بابک بیات ته کنندگان سید قلام رزا موسوی و حبیب اسماییل نویسنده و کارگردان فریدون جیرانی نوشر آبان 1376 هستی ناصر رو در روی همیستادن و هستی جای ای روی صورتش دیده میشه و حسابی عصبانیه تو مغزت که نمیتونی بفهمی این نشونی عشقت دیوانه تفسیر خودته دیگه بهش بگو اینجا زنی نزنه. من وقتی اون مردی که با تو حرف میزنه دیگونه میشم چی بهت میگم؟ تو فکرت بیماره. من اصلا نمیتونم با تو زندگی کنم. جا. میخوام برم. غلط میکنی بری. دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم. نمیخوام. حسی ناصر رو ترک میکنه و ناصر هم دنبالش راه میفته و جلوشو میگیره. حسی. حسی. دکتر کوچولوی حسی با آسونگی در حال میاد و نگران شاهدین درو. او یه گرتم که آدمی نیست. نمیخوام از زندگی خورم. نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. کوتاهیه دیگه بیخیر. تازه از شما ول بگیریم میخوام اون من گردم من نکدوس سیرالد بخرم. چی گفتی؟ یه مس به سین تیرم گردم من که بخرم. <تصفيق> تو نمیتونی منو با پول بخری. من از اون زنایی نیستم که کوتاهی بخورم طلا بگیرم. اینو بخون تو پس چه زنی هستی. چی میخوای؟ تلاو. <تصفيق> ناصر میزنه زیر گوش هستی و هستی هم از ساختمون میزنه بیرون دخترک تند میره تو ماشین میشین و هستی هم در شیشه یه ورودی ساختمون رو از بیرون قفل میکنه تا ناصر نتونه بیاد بیرون و بعد میره داخل ماشین ناصر با صندلی شیشه رو میشکنه و میدوه سمت ماشین اما هستی سریتر از اون حیات دیلارو رو میکنه. و تزی وی چی تو کلت فرو نمیره منه الاق عاشتن هستی و دخترش تو در شب به سمت تهران برمیگردن و جاده با بهون زده رو میگزنه سبحو هنوز آفتاب شلو نکرده هستی به تهران رسیده دخترش تو ماشین خوابش برده کابشنش رو از عقب قبر میداره و روی دخترش میندازه جلو یه کتاب فروشی که هنوز بسته از پارک میکنه سرشو و به فرمون ماشین تکیه میده. دختر هستی دستی بهشونایی هستی و هستی از خواب می پره.کرکرری کتاب فروشی بالا میره. هستی نگاهی به دخترش میکنه و کاپشن رو از روش بر میدار و به تنش میکنه از ماشین خارج میشه. هستی از روی نردهی وسط خیابون می پره اون طرف خودشو به کتابفروشی فروشی اموی هستی مشغول جابجایی کتاب هاست و نگران نگاهی به هستی می امون نگاهی به پاهای بی هستی میندازه جای کشیده هنوز روی صورت هستیه اما من خوام طلاق بگیرم اموچه هستی هم حالا نشسته تو ماشین و با هم راهی جایی هستن. هستی، تو هم کلات خرابه. عین بابات. به اونم میگفتیم برو دنبال جوزف بالسمون میرفت دنبال خشب و حیاو. برش میگفتم تو شاباد پول تو اونه، اونو بچسب. میگفت این مهمه. حالا حکایت تو هم حکایت این و اونه. الان همه... حکایت من با حکایت پدرم فرق داره. حکایت پدرم حکایت آرمانه، حکایت من حکایت آزار. میشم زیر چشمه. چیز عجیبی نیست. همیشه را دعوا میکنن کوتکوری نمک زندگیه زندگی بی نمک فایده نداره ناصر با همه فرق داره اون یه جوره دیگه است تو یه جوره دیگه‌ای خره همه دخترا دنبال شوهر پولدارن گیرشون نمیاد تو غیرت اومده میخوای ازش طلاق بگیری بابا تو چه هستی ماشین زیر پاد گذاشته موبایل برات خریده جواهر به گوش و گردنت آویزون کرده بچه‌ت هم که قبول کرده بازم ازش ناراضی هستی از خرش بیا پایین نقنق نکن برو سر زندگیت هستی پشت طباطوی نیست و مرد جوونی به سمت ماشین میاد تا شیشه هاشو تمیز کنه آقای مشرقی اموی عزیز من تصمیم گرفتم برم دادگاه طلاق بگیرم کمکم میکنی یا نه نه من توی این قریت باید شریک نمیشم حستی موبایل و سویچ ماشین رو تحویل عموش میده این موبایل و ماشین پیش شما بمونید ناصر رو با سرابتون بدید بهش بگه خودت نیستی؟ تلا تو مجبور چند روزی بدونم پیش عمو بمونه؟ بهانه نمیگیری باشه؟ باشه میخوایی چیکار بکنی؟ تا روز دادگاه نمیخواه بگیش هستی طلا رو با عمو تنها میذاره و از ماشین پیاده میشه و دور میشه حستی! سب کن سبز شده و ماشین های پشت ماشین هستی عصبانی بوخ میزند 20 روز بعد ساختمون دادگسترری تهران هستی توی راهروی دادگاه در حال عبورایی که دو تا خبرنگار جللو می گیره. باشه البته ما خانم مادر تو سر شوهرت مو درباره طلاق تحقیق می‌کنی می‌خوایم بهت کمک کنیم من دوست دارم مصاحبه کنم چرا خاصی برای نماز باشه مشکل شما چی خانم شعرتون بيكون يا زن دوم گرفته خانم مصری ناگرا این همه زال معده ببین با اونم مصری خانم محترم ما از همه سوال کردیم اکثر خانمایی که اینجا هستن مشکلشون فقره ببین خانم درصد طلاق نشی از فقر در شش ماه اول سال بیشتر از ازدواج بوده ما 56 درصد طلاق داشتیم در صورتی که خانم مشکل من فقر نیست شوهرم هم زال دوم نگرفته مشکل من گفته گفتینید خواهش می‌کنم بگید ناصر هم با منیر و مادرش از راه می‌زنن خبرنگارها میرن سراغ ناصر چرا سادی من نگام کنیم بریم دیگه مونیخ شروعش نکنیم خیلی خوب آقا ببخشین شما اومدین اینجا زندتون رو طلاق بدین دوست دارم دوستانم خوام طلاقش بدم پس برای چی اومدین اینجا من خواندم نخوان خوان اون خانمه از خرشی تو میو خواهی. باور کن پسرام خیلی تو رو دوست داریم این مدل دوست داشتن فشارتونو دیگه نمیتونن تحمل کنم. خیلی دلت بخواد که برادرم تو رو دوست داشته باشه. دختر کتابفروش این همه قروناست. دوست صدر این دختر کتابفروشی خونم عادتون باشه بزاری بریم. از هر کاری منیر ناراحت نشو. اون تو رو واقعا دوست داره. لبونه خوش دانید میگه. همین الان این شکایت تو پس میگیری بعد میگیری سر زندگی. در این مورد خودم تصمیم میگیرم. تو غلط میکنی. منیر جا خارش میکنم. منیر گغی هستی رو میگیره. منیر مؤدب باش. شب عروسیه بزن. برو گوشه خونه. تو خونه بردار من قادم شدی یاد این لفته قبلا کشت زن نگی میکردی؟ یاد این لفته هم نکی بودی؟ تقصیل برادر من این که تو رو پارکه خانه بوده این بابر؟ نکن زن که ك... دهن ببند اگه خاطرت حسیزم داقی زن کردی ناصر هستی میشستن رو بلوی خواست خانم خواهان خانم هستی مشریقی مدعی شده که خانده آقای ناصر ملک خواهان رو به شدت کوتک زده به صورتی که طبق گواهی پزشک زیر چشم راست کبود شده که این کبودی در چند جای بدن نیز دیده شده طبق همین گواهی خوانده برای کوتک زدن علاوه بر ضربات دست از تصمیه کمر هم استفاده کرده که اثر ضربات اون تایید شده آیا خانده دای خواهان رو میپذیره؟ بله بسیار خوب شما طبق قانون مجازات های اسلامی باید دیه بپردازید. زیر پردازم حاج من دیه نمیخوام حاج من طلاق میخوام این دادگاه برای طلاق تشکیل نشده. تقاضای شما اینجا چیز دیگه‌ایه. زیر تقاضام نوشتم حاج من طلاق خواستم. من طلاق نمیدم حاج آقا. حرف نزنید. به چه خاطر میخوای طلاق بگیری؟ شوهرم تعویض روحی نداره حاج من صیغه سالمه حاج آقا. آقای در دادگاه به خوانده برای رد ادعای مهلت پاسخ داده میشه. اجازه بدید اول ایشون ثابت کنه بعد ببخشید خانم دلیلی برای اسباتین ادعا داری بله بفرمایید من نرسم شیفت صبح ظهر شب باید برم سر کار بعضی از همکارای من مردن مترون بخش رئیس منه مرده سه ماه بعد از ازدواج شوهرم شروع کرد به ایراد گرفتن هر وقت می اومدم خونه باید توضیح میدادم و جر بحث میکردم با خودم بردمش بیمارستان تو متوجه بین همکار زن و مرد فردی نیست این کارم فایده ای نداشت بعد از چند ماه متوجه شدم شوهرم نسبت به همه کس بدبینه به هیچ کس اطمینان نداره حتی به من وقتی دیدم حرف زدن فایده ای نداره هیچ جوری نمیتونم رو جلب بکنم و تمام مدت دارم آزار میبینم تصمیم گرفتم ازش شور باشم ولی نذاشت اومد دنبالم قول داد که دیگه آزارم نده با پادر میونی امون برگشتم خونش ولی یک ماه بیشتر نتونست به قولش عمل کنیم دوباره شروع کرد به آزار دادن آزار جسمی. حاجقا این مرد تعادل روحی نداره من نمیتونم با یادم بیمار زندگی کنم شوهر شما قبل از ازدواج سابقه بیماری داشته؟ نه حاجقا از شما نپرسیدم نمیدونم بعد از ازدواج چی؟ حالتی بهشون دست داد که به پزشک مراجعه کنید؟ نه ولی یکی دو بار ازش خواستم بره پیش روانپزشکی. ولی قبول نکرد. برای اینکه دیوانه نیستن، آقا نه. نیست که تذکر دادن به شما ای نداره. بفرمایید بیرون. کاش دیگه صحبت نمی‌کنن. خانم شما بچه دارید؟ بله یه دختر پنج ساله داره. البته مال من نیست. مال شوهر اولشون بچه پیش شماست یا پیش پدرش پدر بچه سه سال پیش سراتوان گرفت کرد خانم مشرقی آقای ملک توی خونه بچه شما رو کتک نمیزنه آزار نمیده نه آقای ملک بفهم ببینید آج آقا من کتکی زدم، نمیگم هم نزدم همینجا میگم اشتباه کردم حاضرم تأخدن بدم که دیگه دست روی زنن. دراز نکنه. هاجقو من عاشق زنم این اش جنونه وقتی زنم با مرد غریبه بگه بخنده من عاشق عصبانی میشم حالا اگه غیرت داشتن جنونه من جنون دارم هاجقو باور نکنید هاجقو تصوّراتشه ببینید اول کار بهش گفتم نرو سرکن ما که به پولش احتیاج نداریم نفقه میخوای با من هرچی میخوای با من ماشین براش خریدم جواهر براش خریدم ولی حاضر نشد کارشو ول من کارمو دوست دارم حاجقا. نمیتونم کارمو ببینید هاجقو حاضر منو ول کنه آی ملک شغل شما چیه؟ بابام تاجر بود چلو کهابی هم داشت وقتی فوت شدن ایرسوم رسید به ما منم تا زمان چلو کهابی از اون حالت قدیمیش در بردن تا خانم خوشش بیاد که خوشم هم وقتی شما با همسرتون ازدواج کردی، ایشون تو بیمارستان کار میکردن؟ بله بسیار خوب پس شما متله بودی. و چون اطلاع داشتین نمیتونین اعتراض بکنید گذشته از این شغل همسر شما یک شغل مثبت و سازنده است و با مشاغل دیگه فرق میکنه بنابراین علا اینکه این که زوج میتونه طبق ماده هزار و و قانون مدنی زنش رو از کار کردن در ای که خلاف مسائل خانوادگی من بکنه ولی دادگاه با توجه به سازنده بودن شغل معمولا به شوهر توصیه میکنه که این موضوع رو در نظر بگیره من در نظر گرفتم حاجقا برا همینم هم هزیفتتم که کار کنه ولی رفتار یه زن نباید تو محیط کارش با حجب به حیا باشه نباید از همکارای مردش دوری کنه. حاجقا من مجبورم تو محیط کار با همکارم صحبت کنم تو خونه چی؟ تو خونه هم مجبوره برای تغییر شیفت مجبورن با من تماس بگیره. همکاراش نه همکارشون هااجقا همکاری که میگه رئیس منه متروون بخشی هم بوده. من به این نتیج و خلاقه نداشتم ولی اون هنوز بهش علاقه داره. باور نکنید حاجیقا. آقای ملک شما دارید به همسرتون تهمت ناروا میزنید آیا در این مورد یقین دارید؟ نه حاجقا خدا نکنه. اگر گمان میکنید گمان برای اثبات یک امر خلاف کافی نیست مگر اینکه یقین داشته باشید. حاجیقا من نمیخوام چیزی رو به شما ثابت کنم. من فقط خواستم به شما مطرح کنم. که شما مشکل منو بفهمین. اگه من حالتها دی ندارم اگه گاهی خوبم گاهی بدم تاثیر خودشه میدونه من حسودم میدونه من عاشقم باز من آزار میده شما ازش بخواییم به من کنار بیاد منو رو من رو در حساسی همه اگه با من کنار بیاد زنگیم به پاش میریزم به خدا دوستش دارم تررسجااب می ترسم زنم از زن بگیرم شما نذری نااصل از چش بلند میشه و سهم دادگاه رو ترک میکنه خانم تقی قانون بادگاه در مواردی که برای احراز حقیقت یک امر دچار ابهامی بشه نیاز به کارشناسی پیدا میکنه در غیر این صورت نیازی به کارشناسی نخواهد بود با توجه به قرار موجود زندگی شما گرفتار یک سوی تفاهم شده که با حسنیت دو طرف قابل حله من از شوهر شما تعهد کتی می گیرم که دیگه شما رو کتک نزنه شما هم مکلف به حسن معاشرت با اون هستیم میدونم کارتون رو دوست دارین حق با شماست ولی به خاطر خانواده کارتون رها کنید بشینید توی خونه اعتمادشو جلب کنید اون به کمک شما نیاز داره کمکش کنید هستی از دفتر قاضی خارج میشه و خبرنگارها ها سریعا جلوش سبز می شه. خانم به شما تبیق شما آمار طلاق پایین ها هستی راهشو میگیره که بره سب کنین خانم این موبایل اینم سویچه اوتوم بید شوهرتون گفتم ماشین جانب کنه امایتونه اما نیلوفر همون زن خبرنگار باز هم مانش شده و موبایل و سویچ رو تحویلش میده هنوز هستی از در دادگاه خارج نشده که موبایلش زنگ میخوره ما رو سرخیه آفانه دیدی ما رو دیدی استخاله ناصر چراخ میده اما حسی راهشو کج میکنه و از سمت دیگه ای میره ناصر هنوز تو خیاب اون کنار هستی حرکت میکنه خانون تا کجا باید شما رو کنیم؟ ناصر پاترولشو میندازه توی پیاده تا دنبال هستی بره اما با دکه ای تصادف میکنه و دکه با ناصر درگیر میشه ناصر میونه مشتلگت ها هنوز چشش به هستی به راهش ادامه میده و ناصر رو تنها هستی به راهش ادامه میده و ناصر رو تنها میزهره هستی وارد بخش بیمارستان میشه و قدری پشت اتاق دفتر پرستاری ماکس کنه. کمی مردد خانه ممدان وارد دفتر میشه آقای رفاق خواهیش میکرم از این بعد با خونه من تماس نگیری هر جا منو دیدید وارم بدکنید من نمیشناسید از این لحظه بعدم فراموش کنید ما با هم هم کار بودیم ولی ما هنوز با هم کار بکنیم تو ماهیت کار برای کار من مجبورم که باشم شما با مجبور نیستید چرا؟ مرخصی میخوام بدون حقوق یک سال ولی من نمیتونم موافقت کنم. بیمارستان به وجود شما احتیاج داره. مگه ما چند تا پرستاریم که مثل شما کارشونو رو بلد باشن؟ مخالفت نکنید. من به خاطر شوهرم مجبورم کارمو ترک کنم. شاید زندگیم بهتر شه. دیگه فين تا آخرش بره. یه روز برفی و هستی و طلا دختر کوچولوش به خونه ناصر برمیگردند. تلا با انگشتاش بشگه میزن هم خوشحاله تو حیات خوف انگیز خونه هستی و طلا به راهشون ادامه میدن و وارد ساختمون ویلا میشن حسی سیطل رو به اتاقش میبره ناصر رو کاناپهی با صورت آش و لاش منتظر هستی نشسته بیمرفت با سیشی ما رو وسط دعوه تا انها گذاشتی رفتی خواستی ما این ریختی ما که کتای گفتی بچه های جردن جنوبی بیان ما رو بزنن این شکل کشی خالا خوشگلی راستی این موزیک از پشت شهر و استو خیدن گوشکمان ببین چی میخونه به من بگو ناصر هتفون واکمنو میذاره رو گوشهای هستی حسی زخمای ناصر رو پامسمان کنه. ناصر چراغ اتاق خواب خاموش میکنه اما هستی دوباره اون روشن میکنه از فردا و صبح نمیرم سر کار رازی شدی؟ دیگه حرف نداری؟ ناصر رو هستی تو چشای هم نگاه میکنه ولی باید به من قول بدی دیگه با من یه رنگ بشه. رنگ به رنگ نشی از فرده رنگ میش رنگ قرمز رنگ ناصر باز هم شراغ رو خاموش میکنه ناصر شاغویه برش کیک رو برمی‌داره و به هستی میده تا کیک رو ببره. مهمون‌های یکی یکی به هستی و ناصر تبریک میگن. نیلوفر و بهمن همون دو تا خبرنگار هم تو مجلس هم پیش. مبارکه. خیلی ممنون. هستی سعی میکنه لبخند بزنه. اولین سالگرد ازدواجشون رو تبریک میگن. متشکره. مرسی. ما شاء الله چقدر خوشگل شدی. حال لا هم صحبت کنیمین. ولی با ضمون خودم میگم. خوش باشید. قون تو متشکرم. باسی کنار هم؟ آها اوبه؟ به من نگفتین خبر رو چرا دعوت کردی؟ حال من شدم قصی زندگی ما رو بیسین. بمانی بکنی؟ لاخان بزنی <تصفح> ناصر با کادوی میونه مهمون ها میاد خب حالا نوبت کادوی خودمی خودم هم میخوام بازش کنم. هستی بیا خدا رو شکر حالا خیانم راحت شد خصم زنید تو این چیه؟ پول. نه عروزکه پیانوه آدمانی. غلطه ناصر کاغذ کادر رو پاره میکنه این سند این خونه است و این خونه سند رو به سینش میزنه وقتی خونه دوم رو نام میبره در که هستی خانوم بفهمه که چقدر خاطرش رو میخوام دلخوری بیشتر شد شش دونگه این خونه رو به نامش گرده بیشتر؟ بخند. حسنی <iptal> طلا رو به بغل میگیره و گوشه میشینه. <kom> خب امشب آقا بابک عزیز یکی از دوستای خوب من اومدن اینجا که اون آهنگی که من خیلی دوستش دارم برای ما بخونن. فقط محبت کنید این هم رو خاموش کنید. ناصر هم کنار نوازنده نشسته و غرق شادی این شده. نگرانی هنوز تو صورت هستی دیده میشه مهمون ها هم سرمست موسیقی و آهنگند الا مونیر که حسابی دمه قدرم آشقم من آشقی ندا خبر از دل زاررا آرزوی جست ودن سر ندا پاشم اشغی بی دل آرزوی جست ندارم آ تو خدا ها تو, تو به تو طلب خواب میره و هستی قبل پایان موسیقی اونو میبره تا بسرعتش روی تختخواب راستن هستی باز هم فکر و خیال و گمانی رو به چهره ناصر می همجا روز بعد شده و باز هم هستی توی راهروهای روهای دادگاه است نیلوفر و بهمن جلوی هستی رو میگیرن خانم مشرقی شما دیگه چرا نا اینجا طلاق آخه شما که جب... عاشق هم بود. درسته هنوز هم عاشق هست ناصر منیر با عجله راهروی دادگستر دادگستری رو میگذرن طلاقش بده خودی تو راحت کن نمیتونم طلاقش بدم. نمیتونم آقای ملک شما چرا؟ شما چرا آمدین اینجا؟ من؟ من خانده این خامی خانه هستی با سر و صورت کبود و زخمی روبروی خازی نشسته حاج آقا شما از من خواستین کارمو ول کردم گفتین زندگی تو حبس کن نشستم خونه زندگیمو حبس کنم ولی یک ماه بیشتر زندگی نداشتم بعد شروع کرد به بهانه گرفتن چرا از خونه میری بیرون؟ چرا میری خرید؟ چرا لباس تو عوض می از خونه میری بیرون؟ چرا تو ماشین می چرا با تلفن زیاد صحبت می با کی صحبت می چرا دوستات میان خونه؟ چرا میری مهمونی؟ چرا؟ چرا چرا راه را میری؟ چرا نفس میکشی؟ ببینید حاجقا وقتی یه مرد همه چیز میخره میذاری تو خونه؟ نمیثره آب تو دل زنش تکن بخوره؟ با چه زن تو این خونه میره بیرون؟ من که چیزی کم نذاشتم. شما ازش بپرسید من چیزی کم گذاشتم؟ حاج آقا من که فقط خورد و خوراک نیست من دوست دارم خونمو با سلیقه خودم درست کنم دوست دارم لباسمو خودم انتخاب کنم دوست من دوست ندارم زنم بدون اجازه من از خونه بره بیرون من دوست دارم لباسش و کفشش و ظرف و ظروفشو خودم بخرم چی میخواد دیگه من زندانی نیستم که من خودم حق انتخاب دارم عقیده دارم سلیقه دارم زندگی مشترک معنیش چیه حاج من آبرو دارم من دوست ندارم سلام خودشو نونوار کنه. دوست ندارم آرایش کنه بره خرید. دوست ندارم با مرد غریبه بگو بخند را بندازه. دلش می‌خواد که گردی کنه. حاج من دلم نمیخواد من بیرون از خونه آرایش خیابون خیابونگردی نمیکنم. من دوست دارم همیشه لباس مرتب بپوشم. شلخت نبودن ایوه. خانم پوشش شما همیشه همینطوره؟ ببینید بله. حاج من میگم زن باید با سلیقه شوهرش رابره. من میگم بعد با سلیقه شوهرش لباس بپوشه من دوست ندارم هاج قاضی آهای محترم حالا که زنتون مطابق سلیقه شما رفتار نمیکنه چرا طلاقش نمیدید دوستش ندارم هاج قاضی منم طلاقش بده دوست هم داره هاج ببینید بازم کتکش میذارم هاج کسی که جلوی مرده غربه بگو به خند را بندازه کسی که نیششو واکنه رژه بره حقش کتک بخوره حرفاشو بابر نکنیت حاجقا شوهر من بیماره روانیه تو دلت میخواد منو بیمار نشون بدی تو دلت میخواد طلاقو تو از من بگیری بری زن اون مردی کشی حاجقا هنوز هم اون مردی ارتباط داره دروغه شما دارید به همسرتون اتهام بی افتی میزنید اتهام بی با دوبار اقرار و با شهادت دو شاهد عادل اثبات میشه شما شاهدی دارید که اثبات بکنه شاهد بیارم من حاضرم ببینم شهادت این دو شاهد عادل نشناvem من زنمو دوست دارم حاج آقا حاج من نمیخوام نمیخوام این منو دوست داشته باشی طلاق منو از این مرد بگیری آروم باشید خانوم تکرار کتک زدن از مسادیق بارز سوی رفتاره بنابراین شوهر شما باید توسط پزشکی قانونی معاینه بشه من الان نامه می نویسم فرد صبح پزشکی قانونی تا شوهر شما مورد معاینه قرار بگیره اگه ایشون با پای خودش نرفت سریعا به من اعلام کنین تا معمور بفرستم. این یعنی به معمور نیست اما با پای خودم میره. بسیار خوب پس مشکلی نخواهیم داشت. حال بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی دادگاه در مورد تغاظای طلاق شما تصویر میگیره خوازی شروع به نوشتن سورت جلسه و حکم های لازم میکنه و هستی موبایل و سویچ ماشین رو باز هم تحویل ناصر میده خانم مشتقی اینجا رو امضا کنید هستی و ناصر برگه ها رو امضا میکنه آقای ملک شما هم اینجا هست. پسی از در دادگاه خارج میشه و عینک آفتابی به چشم میزنه تا زخمهاشو بپوشونه اصلیمی محل کارش برمیگردن برای رفتن به دفتر مکسی میکنه این بار قبل از ورود به دفتر در میزنه بفرمید با من کار داشتید خانم بله خب بفرمید من نمیخوام از بقیه مرخصیم استفاده کنم میخوام برگردم سر کار من شما رو نمیشنستم خانم از برخورد اون روز متاسفم شوخه کردم من میدونم شما در چه وضعیتی هستید درک میکنم فقط حالا که میخواد برگردید سر کار شوهرتون موافقت کرده؟ من دارم از شوهرم جدا همیشه فکر میکنین این کار درسته؟ من میخوام از همین امروز برگردم سر کار هستی به کارش تو بیمارستان مشغول میشه و میره به بالین مریضی تا فشار خونشو بگیره خانه مشرقی تلعات خانه مشرقی تلعات. خانده مشرقی اطلاعات خانده مشرقی اطلاعات هم. هستی با شنیدن صدای پیجر به اطلاعات بیمارستان میره سلام سلام سلام سلام تبریک تبریک من که شنیدم شاخت در آندم اصلا فکرشم نمی کردم خوب کاری کردی تصمیم آقلانهی گرفتی من وقتی شنیدم گفتم باری کلا حالا برای مبارکی دهنه تو شیرین کن رسم نیست برای طلاق شیرینی بیارن امون جا آره فردا میبرنش پزشک بارنه اگه تشخیص بدن بیماره که تشخیص میدن خوکم طلاق ساده میشه تو اقلی سر جاشه چطور مگه؟ بابا امروز بعد از نهار با که ناسبایی جلو گلشی نومد خونه ما خودش گفتش که قبول کرده تو برگری سر کاره گفت با هم قرار گذاشتیم که هفته یه بار خودش بره روانپزشکی یه ساعت پیش ما بود شیرینی خورد چایی خورد بعدم طلا رو برداشت رفته گفتش که خودت گفتی بره دنبالش بالش بردش خونه شما چرا گذاشتم رو ببره خب ما فکر کنم داره راست میگه حالا چته حالا مگه بچه‌رو برده باشه چطور میشه حالا شاید برده که آشتی خونه. هستی نگران میره به سمت آسانسور هستی؟ دلقه صحب کن همون جان نهت اون برده برشاره که شاید بتا خاشدی خونه حتی همین که شما میشه پایی تاکسی خودش رو به این ناصر میبسونه و بعد گذشتن از حیات وارد خونه میشه استیاروسا که طلا رو که یه خرگوشی کچولوست به بغل گرفته توی اتاقها رو می اما گم شدهش رو پیدا نمیکنه. کنه با شنیدن صدایی تلفن می و گوشی رو بر می داره الو ما کرده تم و تو دلما پس گردی تلا الان سر ما گنده جلم نشته داره کارتو هم می بینه تو کجایی؟ مگا با این مرحومم به چاقو طلا رو بردی اونجا مثلا که امشب زیارتت دیگه از جونم چی می‌خوای هاتون سیازانم دادی داد نذن امشب می خوام بدم. بده خوشگردن فقط شام آخره با تو بخورن باشه بیا ایشش هم قراره اسمامان امین رفتن رفتن اگه تا نیم ساعت دیگه طلا رو نگردونی با مأموریه انتظامی می اونجا فهمیدی چی گفتم اگه خوش داری من و تو بفرستی تو اتیش این کار بکن ولی خودم و تو تاری اتیش میذارم که جفتمون جز خالشی تو که میدونی من خرم بس یکای نکن که پشیمون بشی را بیفت اینجا فقط با هم شام میخوریم بعدشم تو آزادی آزاد خیلی خوب میام ولی فقط یک ساعت شکرتی <تصفيق> ناصر گوشی رو میذاره و به انتظار میشینه اما چند لحظه بعد سیم تلفن رو قطع میکنه میاد یا نه آره به من بگید اینجا چه خبره هیچ خبری نیست شما بر خونه دایی دیگه لفتش نده برو مامان تا به من نگی اینجا میخواین چی کار بکنی من از اینجا جمع نمیخورم مامان بعد خیلی نکن ما با هم قرار گذاشتیم آخه منگی من نامهرمم نامهرم نیستی شما باشی کار خراب میکنی برو ماما آخه شما دوتا میخواین چی کار می‌خوایم فقط با هم دیگه شام بخوریم، میخوایم فقط با هم دیگه صحبت کنیم. شما اگه اینجا باشی نمیتونیم با هم دیگه جدی بزنیم. خودتو میندازی وسط دسات ما نه معنی‌ریزی. بس من برم اتاق تغییرشین، باز می‌دَم اگه اون نخودم تا شما مالگی ناصرو دوست داری برو دیگه. اینا خب میرم ولی مراقب این دو باش که با هم دعوا نکنن. حتّی با پس نباشه. دیگه با هم دعوا نمی‌کنن. برو دیگه. منیر چادر مادر رو, رو شونه‌هاش می‌ذاره و مادر رو راهی می‌کنه. تلا روی خاناپه به خواب رفت و ناصر هم به لیوان نوشابه نشابه روبروی طلا نگاهی می <تصفح> ناصر به تراس میره و لیوان رو جلوی مونیری می گیره. زیاد که نریختی؟ نه فقط یه بالیام پنجمین ریختم دکتر گفت پنجمیش می خوابونه ولی فشارشو پایین نمیاره بچه گناه داره میدونم. خیر خیلی خب بروت اونها تاک هستی به همراه خبرنگارها از خیابون های تنگ و دل میگذرند و زیر بارون هستی خودشو به دم در خونه پدر ناصر میزید قرار من یک ساعت. اگه تا نیم ساعت بعدش نیومدم، بریم به این آدرس دنبال اموی من باش بیانی اینجا باش محبتتون رو فراموش نمی کنم ای بابا این چه پیه. نظر بله هستی استقبال طلا کجاست؟ من از تو همون همونقدر دوست دارم که ببین دیگه هیچ حرفی نزد فقط شام میخوری من حرفی ندارم فقط شام میخوایم باشه ناصر نمیتونه حرفشو تموم کنه بده پاوتو دارم هستی و ناصر میرم به سمت شام ناصر صندلی رو برای هستی آماده میکنه. اینجا بسی. اما هستی بعد مکسی کوتاه روی یه صندلی دیگه می‌شینه. ناصر به صفحه موسیقی می‌ذاره و خودشم به میز شام اضافه میشه. با های سرخی آراسته شده هستی موقعی کشیدان غذا دستش به لیوان دوغ میخوره و دوغ میریزه روی میز هستی قدری از غذا میکشه و مشغول میشه اما ناصر فقط نوشابه می و خیره شده به حسن. ظورا سر بغض و به گریه میفته با تو با اندام اس توفو تو تو به تو بیندازدم، از همه بوس استم، با تو فدو سوزم چون. شدت گریه ناصر زیاد شده و میزشان رو ترک میکنه هستی نگاهی به دوغ ولو شده روی میز میلازه موسیقی تموم میشه و هستی هم میزشان رو ترک میکنه اما ناصر از پشت سر بهش نزدیک میشه و محکم میکنه پشت گردن هستی و هستی از حال میره ناصر ترسید و عصبی به دیوار تیکیه میده و میشینه روی میز مونیر هم به راه رو میاد مغزگار محله کرکرهی مغزشو پایین که و میره بهمن و میرور هنوز زیر بارون منتظره ساچنه دوشت بکم خودتو حالا شد آب به صورت حسی پاشیده میشه و به هوش میاد ناصر با دلجویی و محبت سرشو به حسی نزدیک میکنه سرت درد میکنه حسینی تف میکنه تو صورت ناصر. ناصر عصبانی صورتشو پاک میکنه و همراه منیر از زیر زمین خارج میشه اما منیر میمونه و مانع خروج هستی میشه. ناصر با یه ترکه برمیگرده به زیر زمین. نرسی اقب به دیواری از دیوارهای زیرزمین میرسید مهیر از دور ناظر هستی و ناصر این دستش بود بالای سرم آمیست می گفت، ایست خبردار اما از ترزم ایست خبردار ما دادم گفت کجا بودی؟ هیچه پدر با کی بودی؟ هیچکی پدر سیگار کشیدی؟ نه پدر تو با کن ها کن اون پاشی کردی میکردی؟ پدر چونا چتی بود هیچ کی پدر خندیدی نه پدر نه خندیده کردی نه پدر کردی نه خطا کردی نه آره نه دروغ میگی دروغ میگی دروغ میگی mùi راس دیدنی انسان به لذت میگه دروغ ناصر به ای پست میکنه و از زیر زمین فرار میکنه اما مونیر جلوشو میگیره. هستی مونیر رو هم کنار میزنه ناصر هم به دنبالش میدهه تا اینکه دم راه پلده های حیات باز به بشت سر هستی میزنه و هستی بیهوش میشه ناصر بالای سر هستی روی پلده ها میشینه نیلوفر و بهمن توی ماشین رینای خودشون نشستن و برف باکن رو روشن گذاشتن تو هم چه اصابی داری؟ چقدر گذاشته؟ هیجان داری؟ خیلی زیاد حالا شد شست دو دقیقه در نر های زییرزمین رو با زننجین میبنده و برمیگرده پیش هستی ناصر. کاغذ بهش بده بخواه ناصر برگلی به هستی میده. من هستی مشرقی متولد ۱748 به شماره شناس نامه 4۸ و است تهران. در ساعت عقد و شوهور اقرار میکنم که به شوهرم ناصر ملک من به تو خیانت نکردم بخون خیانت کرده و با مرضی به نام حامد لعوف را امضا کن امضا کن. کن داره اگه امضا کنی دیگه اذیتت نمیکنم من به شوهرم خیانت نکردم شما میدونید که تو پاک نیستی امضا کن نه امضا کن ناصر خودکار رو جلوی صورت هستی میگیره ما این رو به دالونی و با شلگی برمی گرده قبل یهزنش را امضا کنه نمیتوننم داددمشتهگه میخوای به بر پزشک خاونی؟ قانونی؟ م... آاب مو بره؟ دیلت نسوزه؟ این زنی که دست بردار نیست اگه نامره ازش نگیریم باز میره همه جا جار میزنه تو رو دیوونه معرفه میکنه تو دیوونه نیستی دیوونه ای دیوونه ای بس بگیر چی هستی نمیخوام بمیره نمیمیره زنده میمونه اون مثل گربه هفت جون داره بگیر من دوستش دارم بعد خسنی که میخواد سر بکنه دموشو من دوستش داری نخور خرابه. اونجاش تو خانواده من است. اش تو خودت بکش. بس ازش هم حساب نکن. تو دادگاه سر تو بالا داری. نمیخوام. نمیخوام زنی که تو رو خوار و ذلیل نمیخوام. ناصر بالاخره شلنگومی گیره. هستی هم یه ظرف مسیر رو بر میداره تا از خودش دفاع کنه خواهش میکنه رو نمیزه خواهش میکنه هستی ظرف رو پایین میدازه و محکم میزنه تو صورت ناصر ناصر هم با شلنگ میفته به جونش حالا شد نبود راویو فیل <تصفيق> نیلوفر و بهمن از جلوی خونه پدر ناصر دور میشن مونیر نگاهی به حسیل نیمه جون میندازه قفز میکشه دکن نمیخوره چرا حرف نمیزنه نظر ببیره هستی هستی زنده میمونه بدنش هنوز درمه نفس میکشه ولی نبزش برد میزنه رنگشم پریده ممکنه بمیره خدا نکنه بمیره حالا باید چی کار کنیم باید بریمش بیمارستان. من میرم زنگ میزنم به ارژانس تو بیارش بالا کن به بیمارستان چی بگیم بگی ما زدیمش دروغ میگیم باور میکنن؟ چاره چی؟ اگه اون بمیره ما قاتل میشیم. ما که قاتل قاتلی؟ مونیر میره به سمت نرده زیر زمین. تو قاتلی. خوش شدی؟ تو اصن نخواستی بزنمش. تو خواستی بکشمش. نه من نخواستم بکشش من فقط میخواستن به تو کمک کرده تو روح باشم. میده. تو کشتیش. تو حالت خوب نیست دیوونه شدی. تو خودت گفتی من دیوونه نیستم. ای. دیوونه نیستم. نیستم. من بخاطر ریسلکی پاپتی اساس بشن. ناصر گلدنی و پیسار مونیر خورد میکنه صورت مونیر غرب خون و چشاش بازمونده <تصفيق> ناصر نشه بی جون مونیر رو به وسط زیر زمین میکشه و کنارش زانو میزن و می‌شینه. ناصر هستی رو همی کشه کنار میز و یه بیست لیتری نفت میرزه روی هر دو شوید. با صدای زنگ نازم نیدرسی به خونه میره تو چراخارو خاموش کنه اما همچنان زنگ میزنه مشتا رفتن غیر ممکنه ما یک ساعت و نیم منتظرش بودیم خودش گفت بعد از اینجا ممکن نیست اون فاصله که شما اومدین دنبال من آشتی کردن رفتاد اونها با هم آشتی نمی‌کنن این مهاله ما تو دادگاه بودیم زن شوهرو من بهتر از شما می‌شناسم چه کار میکنی آقا زشته بیا پایین رفتن استیره برق بالا میره اون نگاهی به خونه میندازه آقا حیاط روشنه ولی خونه تاریکه تاریکه خیلی خوب بیا پایین کجا میتونن رفته باشن رفتن خونه خودشون میرفتن استوره ناصر شام بخورن چما خودی هسته قلب میبینیم پیده شم کنیم خیلی خوب بریم پیده کنیم بعد صدای رفتن ماشین ناصر و زیر زمین اما هستی حالا دیگه کنار منیر نیست حسی از پشت خرتوپدها نگاهی به ناصر میندازه. ناصر متوجه اون میشه و میره به سمتش. هستی وسایل داخل انباری رو میریزه روی ناصر و از در خارج میشه. در قفل میزنه. هستی به داخل خونه میره تا طلا رو نجات بده ناصر نقلی زمین رو باز میکنه اما دیر میرسه و هستی با تلا از خونه میزنه بیره. هستی جلوی کامیون رو میگیره و ناصر همونو تقییب میکنه هر لحظه هستی به کامیون نزدیکتر میشه و ناصر هم به سرعت رو نزدیک و نزدیکتر میکنه نور کامیون تمام شهره هستی به باشن میکنه کامیون به هستی میخوره و هستی و طلا نقش زمین میشن ناصر با دیدن صحنه فرار میکنه راننده هم بالای سر هستی میاد. عکس ناصر رو به عنوان فراری توی یه روزدامه ها چاپ کردن هستی بیهوش روی تخت مییمارستان. خبرنگارها ایسه حصی رو هم توی صفه حوادث چاپ می‌کنه. حصی که امشب توی راهپوی دادگاه گرفتار خبرنگارها هستن و سعی می‌کنن خودشون رو به دفتر قاضی برسونن. لازم خبر رو معرفی کردن در جایی من حال مساعدی نداره نمیتونه مصاحبه کنه. چرا اینقدر شکنجه تماو کردین؟ شوهرتون با چی می‌کوره شکنجه می‌کنه؟ چند سال بیماری بودید؟ شوار شما چرا یه سال چرا بعد صحبت کنید سوال دوباره برگرده سراغ شما چرا میکنم بالاخره حسی وارد دفتر قاضی میشه و از شر خلاصی پیدا میکنه خانم مشریقی توی گزارشی که اداره آگاهی برای ما فرستاده شوهر شما 24 ساعت بعد از قتل خواهرش از طریق مرز زمینی از ایران خارج شده که اسم مشخصاتش توی مرز ایران و اون طرف مرز در ترکیه ثبت شده شوهر شما 48 ساعت توی یکی از مسافرخونه های استانبول اقامت کرده و بعد از اونجا راهی مقصد نامعلومی شده مأموران آگاهی معتقدند شوهر شما به ایران برگشته و ممکنه باز سراغ شما بیاد اداره آگاهی معتقده که شما باید مراقب باشید. شوهر من برنامه به هر حال ما از شما خواستیم به اینجا بیایید تا به اطلاعتون برسونیم چون جرم شوهر شما محرزه حکم طلاق غیاباً صادر میشه. بنابراین شما میتونید مجددا تقاضای طلاق کنید و دادگاه رسما حکم طلاق رو صادر کنه. من طلاق نمیخوام. رو دوست دارم. اما غازی متحیر نگاهی به هستی آخر بهمن ماه و همه جا رو برفو شده هستی به همراه اموش دوباره وارد خونهی خودشون ناصر میشه خونهی خوفنگیست تلا همراه دختر حسی هستی به استقبال هستی میان ماما خوف شدی؟ هستی تلا رو به آبوش گرفته و همه ی میز میزشان میشستن حتی نیلوفر بهمن هم مهمون شام هست نازر رفت برای همیشه آگاهی اشتباه نمی کنه ممکنه برگرده اگه میخواست برگرده نمی رفت. با همه اینا احتیاط شرط عقله چطور خب بیاید خونه ما آره خونه ما کوچیکه ولی میشه توش زندگی کرد خوبه میرم شمال فردا تنهایی نه قطرناکه ناصر دیوونه است اون پیدات میکنه قرار نیست اتفاقی بیفته نترسید آقا اتفاقی خبر نمیکنه کنه خواهد اونجا. ما همراهد می آید. ما مرخصی می گیریم. نه میخوام تنها برم شب بخیر کجا میری؟ میرم بخوابم می خواهد پیشت بمونم نه برید خونه با خیال راحت خب نیلو تو بمون آره من بیشتون میمونم آخه میخوام بقیه داستانو داستان تموم شد شب خیر هستی و طلا جمع رو ترک میکنن و به اتاق خواب میرن میزشام با ظرفهای نشستش دست نخورده رها شد و از مهمونها خالی شده های خونه همه روشنند و چیزی تا طولو نمونده خونه خالی اما وهمانگیزه طلا تو تخت خوابش خوابیده و حسی هم انگار به انتظار تو خونه گشت میزنه حسی دستی به صورتش میکشه و میره جلوی میزه چرا چراخای خونه یکی یکی خاموش میشه حسی ای رو به گوشه اتاق هل میده و روی اون میشینه چاقوی رو بر میده روی میز تلفن میذاره و رو موسیقی مورد علاقه ناصر رو روشن میکنه. دسته خیره شده به راه بله زفت سطر رو روی میز میذاره و فنجون کوچیک که رو به دست میگیره و از اون مینوشه جست و ده سر ندارم Tu e Oh da Ga to ga خودو خوبه حالا تقریبا صبح شده و هستی روی کاناپه خوابش برده صدای هستی رو از جاش می پرونه اما تاسگیر میدار شده صبح نمیخوا هستی تو مرفی رو برای صبحانه نییم رو میکنه می تلفن زنگ میخوره میره رو پی خام شب دیگه ای از راه میرسه حالا خبیده که صدای رعد و برق خبیدارش می‌کنه. از در سرشونی بر از ریلها خفیش. هسی نوار رو تو کاسه میذاره اما اونو روشن نمیکنه. آسن خیره شده به راه پله که این بار سایه روی دیوار میفته سایه متعلق به ناصره که در پله ها بالا میاد چشمای هستین میخنده و دست به کارداش بسخونه میبره جون قفر رو از روی میز می زمین و با کارد به سمت راه پله می میره سایه فرار میکنه در آسانی پله ها هستی با صدای طلا بر ناصر شاهد هستی و نه ترس مادر هستی رو به آغوش میگیره و ناصر هم پشت دیواری پنهان میشه هستی با احتیاط از پله ها پایین میگه بافل از ناصر پشت سرشه نه ترس مادر. حسی نگاهی به در باز ورودی ساختمون میندازه و با عجله برمیگرده به اتاق خواب طلا. کارت رو بر داره و در اتاق خواب رو می‌بنده. از تخت بیرون نیا، از این جمع نترس تا من برگردم. باشه. تاش ماما نگاهی به اطراف میندازه. خبری از ناصر نیست. هستی از پله های دوار ساختمون پایین میره و بلخره سرکله ناصر پیدا میشه هستی توی همکف دنبال ناصر میگرده اما ناصر هنوز بالاست زرط روشن میشه و هستی خودشو به بالای ساختمون میرسونه کناپ خالیه حسی به سمت اتاق خواب میره و طلو رو تو بغل ناصر میری بچه از آسم اونبار رو من ت دا قبلش نمی منتظرم بودی آره رفتم اون طرف مرز خواستم تنها زندگی کنم دیدم که نمیشه لامن سبیه کاری به دلم که حدی که نمیتونم بدون تو زندگی کنم میدونستم برگردم کارم تمومه بلی دلو زدم به دریا رو برگشتم که با هم بریم کجا؟ توی قبر زیر خاک جایی که آرام میشه خوبه؟ راهشم فکر کردم ستایی با هم میسوزیم جزقاله میشیم حاضری به هم هم به سوزی حاضرم ولی بدون طلا. میفرستمش حالا. هم میخوای چه بدونم پدر مادر بزرگ شه با ما بسوزه به سوزه راحت شد بزاره سمین جیخ بچه میترسه گفتم بزاره سمین هستی کار رو بالا میاره. ناصر هم طلا رو میبره بالای سرش هستی کارد رو به سینه ناصر فرو میکنه ناصر لبخند میزنه و تلا رو پرت میکنه به سمت هستی هستی اقب اقب تلا رو میبره به اتاقی دیگه و در اونو قفل میکنه ناصر دست به کارد آشپزخونه میبره و اونو برمیداره زخمی و تل و تل خوران به سمت پله ها میده کسی از پشت به ناصر نزدیک میشه اون از پله ها به پایین پرتاب میکنه خون از دهن ناصر بیرون میزنه جوند. از بالای راه پله هستی به نحش بیجون ناصر خیره شد و توجهی به زنگ تلفن نداره رادیو فیلم قرمز که با تلاش فرشاد سردبیر رو تهیه کننده علی حاجی نوروزی صدا بردار و من آرمان قفاریان نویسنده و راوی تقدیمتون شد به پایانش رسید امیدواریم که این تلاش مورد توجه شما دوستان خوب قرار گرفته باشه تا رادیو فیلم دیگه به شرط بقا خدانگهدار